هجده هم. صبح روز هشتم ماه اوت ناگهان دستورالعمل جدیدی رسید به علت زیاد شدن بیش از حد بیماران این پذیرشگاه توانایی رسیدگی به تمام آنها را نداشت بنابراین دستور دادند قسمتی از بیماران به شعه بیمارستان نیروی زمینی شبارا واقع در شمال بینگو منتقل شوند. کسانی را منتقل می کردن که خودشان می توانستند سوار قطار شوند. در واقع زخمی هایی که به اینجا آورده می بیشتر در شرف مرگ بودند. به محض اینکه جنازه ها را راست و ریس می کردند باز هم زخمی هایی جدید آورده می شد. درون کلاس ها و چادرها لبریز از بیماران شد. حتی انبار قله و آلونک های چوبی خانه های کشاورزان آن نزدیک هم پر شد. در باغ هم زخمیهایی خوابیدند. خابیدند. مدرسه شهر و روسته اطراف هیروشیما همه مانند مدرسه هساکا، پذیرشگاه اورژانسی و همه هم بیش از حد پر شده بودند. بنابراین لازم بود آنها به مناطق دورتر فرستاده شوند. پزشکان هم کافی نبودند و مجبور شدند تعدادی از بیماران را در فضای باز بگذارند. هی! Hey! دستور فاری است! همه گوش کنید! همانطور که الان گفتم کسانی که میخواند به شبارا بروند اعلام آمادگی کنند. کسانی که فکر می کنند توانایی بدنیشان آنقدر هست که تا شبارا سوار قطار شوند دستشان را بالا بگیرند. از حساکا تا شبارا با قطار سه ساعت راه است. بعد از تکرار صدای سرباز بهداری، صدای زنی از انجمن دفاع ملی زنان هم شنیده شد. کسی نیست که بخواهد به شبارا برود؟ کسانی که میتوانند سوار قطار شوند دستشان را بالا بگیرند. از هساکا تا شوبارا با قطار سه ساعت راه است. آقای ایواتاکه نام شوبارا را کشنید در حالی که به پشت خوابیده بود با انگشت پلکهایش را باز کرد و سرفرادی. آشکارات توانست شکاف های چوب را ببیند. با این حساب احساس کرد می تواند تا ایستگاه حساکا پیاده برود. چشمش را بست، نیرویش را جمع و دستش را بلند کرد. بدون وارد آوردن فشار به سینهش، دستش را از مچ بالا برد. به نظر می بیماران آشفته شدند. کسی گفت می خواهیم برویم، اما نمی توانیم. گناه ما چیست؟ این که آن طرف چه زخمی داشت و اصلا کی بود چیزی بود که کسی هیچ وقت نفهمید حضراتی که خواهان رفتنید و می توانید بروید بروید کسی با ناامیدی این را گفت اما باز هم نفهمید کی بود کسی فریاد زد به شبارا بروید آقای ایواتا که اندیشید باید تا رسیدن به شبارا زنده بماند. فکر کرد بدترین کار این خواهد بود که در قطار نفسش بند بیاید. شبارا زادگاهش بود پس باید زنده می ماند. علاوه بر این رئیس شعبه بیمارستان شماره یک نیروی زمینی هیروشیما، دکتر فوجی تاکاشیگ آکیرا، آقای ایواتا که در زادگاه و ارشد او در دوره دانشگاه بود. که به عنوان پزشک ارتش به خدمت فراخوانده شد پزشکی بسیار رسمی که از روابط بازی دوری می کرد فکر کرد شاید آقای فوجی لطف کنند و روغن و اکسید زینک به زخمایش بمالند آیا این فرصت مثل قایقی برای فرار نبود؟ امکان داشت این فرصت از دست برود پس تصمیم گرفت هر دو دستش را بالا ببرد دست راست آقای ایواتا که خسته و بیرمق شده بود جای آن دست چپش را بالا برد بسیار خوب میتوانی دستت را پایین بیاوری رأی ثبت شد صدا از کنارش بود پس دستش را پایین آورد پلک‌هایش را باز کرد و نگاهی انداخت سرجوخه بهداری بر چسبی به بند حکامای نظامی او چسباند نیمخیز شد و نگاه کرد با جوهر سیاه نوشته شده بود اعزامی به شبارا کی اعظام می از سرواز بهداری که پرسید جواب گرفت بعد از اینکه تعدادتان مشخص شد خیلی زود در حیات مدرسه جمع خواهید شد وقت نهار رسید چیزی شبیه اصاره کیک برنج یا شوربای برنج آوردند آقای ایواتاکه اشتها نداشت پس فقط چای نوشید ظاهراً به خاطر تب بود ساعت سه بعد از ظهر دستور جمع شدن صادر شد در حیات مدرسه که جنازه ها را رو روی هم می و بوی تعفنش به مشام می رسید، حدود 600 نفر جمع شدند. بعد به صف جدید تانبو را که به ایستگاه حساکا می رسید، پیاده طی کردند. آقای ایواتا که در حالی که به نوبت پرکر راست و چپش را با انگشت باز می کرد، راه می رفت، یک نفر هم نبود که شکل و ظاهر درستی داشته باشد. با گام های نامنظم و سکته دار مثل صف اروا پیش می رفتند. بین راه بالا رفتن از شیب مقابل ایستگاه گلویش کاملا خواشک شده بود و این آزارش میداد. پس رو به زنی که جلوی درگاه خانه سمت راست راه ایستاده بود صدا زد ببخشید آب می خواهم. زن بیش از یک نگاه به چهره ورم کرده و لبهای خشکیده ی ای آقای ایباتا که نی و با خودش زمزمه کرد چه تلخ؟ تشنه شده ای. صبر کن صبر کن داخل خانه رفت و با آبخوری بزرگی روی سینی برگشت آب نبود چای سرد ارزان بود آنچه بعد از سوار شدن به قطار در ایستگاه حساکها رخ داد از یادداشت‌های های دکتر ایواتااک هیروشی عضو پشتیبانی بهداری ارتش هنگام بمباران اتمی هیروشیما نقل قول می شود. سرانجام در واگن انتهایی قطاری فوق‌الاده صندلی گیرم آمد. قطار راه آهن یوی بود که در دوره راهنمایی چندین بار با آن رفت آمد کرده بودم و از زادگاهم میگذشت. صدای سوت قطار را شنیدم و با شنیدن این صدای دوست داشتنی حس کردم میتوانم زنده بمانم. احساسی که فقط برای مدتی مرا از کمبود خواب استراوب و آشفتگی دور کرد. احساس کردم سه ساعت زمانی بسیار طولانی است و قطار هم خیلی کند. بدنم به علت داغ بود و انگار میسوخت. تشویش درونم مدام بیشتر میشد و ناگهان به دلم افتاد که در جهنم فرو رفتهام. سرم گیج میرفت. ولی با توقف در ایستگاه، قطار تکانهای شدیدی خورد و دوباره دلگرمم کرد. در هر ایستگاه زنان جوان و زنان میانسال عضو انجمن دفاع ملی زنان با چای و آلوی خشک از ما پذیرایی کردند لبها و توی دهانم ورم کرده بود اما آلو خشک‌ها خوشمزه. بود. آنها جملات ای چون غمگین نباشید خیلی سخته است. و چقدر بیگناهید به ما میگفتند. بینشان زنان میانسال و زنان جوانی بودند که گریه میکردند. شکی نبود که بچه ها یا شوهران آنها به جبهه اعزام شده بودند. زنی شروع به گریستن کرد و روی زمین افتاد. من که بعد از ورود به خدمت برای اولین بار اشک ریختن دختران را میدیدم، شعر بریده از ماه چنگ آن اثر لیبای را به یاد آوردم که حدود سی سال پیش در دوره راهنمایی خوانده بودم. اکنون در میافتم آن شعر فقط بیان عادات و رسوم نیست بلکه اثری دلنشین است. در واگن ما دو سربااز سردشان بود. یاد زن و بچهم افتادم. فکر کردم مجبورم پسر برادرم را. در ایستگاه بینگو آکایچی در حال حاضر میوشی توقف کردیم. میوشی شهری است که مدرسه راهنمایی محل تحصیلم در آن قرار داشت. وقتی داشتم تمرین می کردم که بدون استفاده از انگشت پلک چپم را باز کنم نزدیک پنجره دختر آشنایی را دیدم که روی سکوی ایستاده بود. ناخداگاه گفتم خدای من دختر کسی بود که از بچگی پیش امم در شبا را بزرگ شده بود. چون چهره تغییر کرده هم را دیده بود نباید هم من را میشناخت اما وقتی حرف زدم سرانجام به خاطر آورد پرسیدم. معلوم شد از مدرسه دختران فارق و تحصیل شده و به عنوان عضوی از گروه خدمات در ایستگاه حاضر شده. از وضعیت خودم که چه به روحی و چه به لحاظ جسمی یک سرباز شکست خورده ی جنگ بودم به اختصار برای او حرف زدم بعد او با تلفن ایستگاه با ایستگاه شبارا تماس گرفت اجازه رؤسای دو ایستگاه شبارا و بینگو توکایچی را گرفت و همراه هم سوار قطار شد در آن ساعت قطار زیاد توقف کرد با این همه ملاقاتی غیرمنتظره بود. خوشبختانه سریع با بستگانم تماس گرفته شد. عجیب این بود که احساس تشدید شده نرمتر نرم اما وضعیت بیماری بر برعکس بدتر شد. همه ی هم شروع به لرزیدن کرد. وقتی به ایستگاه شبارا رسیدیم آن دختر برای به امم رفت. خانه پدریم از شهر شبارا فاصله داشت پس باید برای تماس با اومید. از طرف دیگر محلی که ما سربازان شکست خورده با اتوبوس زغالسوز در تاریکی به آن برده شدیم بیمارستان نبود بلکه کلاس های تخت فرش مدرسه عمومی دو ای بود که با مدرسه حساک تفاوتی نداشت همه به شکل ماهی کنسرو شده داخل کلاس ها چپانده شدیم وقتی دراز کشیدم افکارم آشفته و رش و لرزی به تنم حمله ور شد. شبکه شد تب شدیدی گرفتم و نمی توانستم حرف بزنم. با اینکه میخواستم چیزی بگویم اما نمی توانستم. خیلی مهو به یاد میآورم که آن شب یک بار اعلان وضعیت خطر حمله هوایی شد. تا کنون سه بار پیش آمده بود که هوش و حواسم را از دست بدم. بار اول بیهوشی درست بعد از بمباران اتمی بود. بار دوم شبی بود که بعد از تکانهای شدید در قطار به مدرسه عمومی شهرک شبارا رسیدیم. بار سوم هم به مدت چند روز در اوایل ماه سپتامبر بود که به علت پیشرفت بیماری اتمی در مرز بین مرگ و زندگی سرگردان بودم. بیماری در آستانه مرگ بودم. پس مشاهده عینی وضعیتم هنگام بیهوشی و نیز مشاهده وضعیت جسمیم بسیار مبهم و ناوازه بود صبح روز نهم ماه اوت، تب شدیدی که از دیشب گریبان گیرم شده بود تا حدودی کمتر شد توانستم نشانه های بهوش آمدن را احساس کنم این تب ناشی از عفونت یا عفونت خونی بود امروز پزشک ارتش برای بازدید آمد و دستوراتی به سربازان بهداری داد. از وقتی در بمباران بودم اولین بار بود که پزشک ارتشی می دیدم. اما پزشک حتی از گوشی طبی هم استفاده نکرد. صدمات هم همه بر اثر آتش سوزی بود. سر، صورت، گردن، پشت، بازوهای دو طرف. پشت دست، مچ دست، انگشتان دست و غیره حتی لاله گوشم هم سوخته بود. پوست مچ دستم کنده و گوشت پشتم مثل گوشت گاو شده بود. دنده هایم تقریباً بیرون زده بود. بعدها فهمیدم که به خاطر جهش نوری آنی سوخته که هزاران درجه حرارت داشت. سربازان بهداری روی زخم اسید پیکریک مالیدن. به جاهایی از بدنم که وقت خوابیدن با چوب‌های کف برخورد می‌کرد، گاز پانسمانی مربعی به ابعاد 30 متر چسباندند. معالجه را تمام کردند و سراغ نفر بعدی رفتند. قضیه مداوای چندصد بیمار بود که با یک قطار و یک بار آورده شده بودند. پس به طور قطع نمیشد گفت که کارشان محترمانه بود یا نامحترمانه. روز بعد، یعنی دهم ده ماه اوت، هنگامی که سربازان بهداری در حال جدا کردن گاز پانسمان پشتم بودند، بی اختیار فریاد کشیدم. گاز پانسمان به دلیل تب، وزن بدن و مواد ترشح شده از بدن کاملا به سطح زخمها چسبیده بود. سرباز پایین آن را گرفته بود و می کشی. به علت درد شدید بی اختیار کمرم به بالا کشیده میشد با اینکه نشسته بودم و دو دستم بر زمین بود برای بلند کردن کمرم مشکل داشتم وقتی کمرم زیاد بالا می رفت به علت وزن بدن از باسن پایین می آمد آن وقت گاز پانسمان جدا میشد بدون توجه به خونی که قطر قطره می ریخت با قلمو دارویی مایع مالیدند و گاز پانسمان را چسباندند به صورت گردن دو بازو پشت دست و مچ دست هم از آن دارو مالیدند و سراغ بعدی رفتند میدانستم این روش درمان صبر و تحمل می خواهد. اینجا هم بیماران یکی بعد از دیگری می و بی سر و صدا برده می شدند. سرانجام اعضای انجمن دفاع ملی زنان برای کمک آمدند. آنها وقتی چیزهایی مثل ادرار مریضها را می دیدند، بینی خود را می گرفتند و به دلیل بوی بد، معمولا دهان خود را بسته نگه می داشتند. بعد از ظهر همین روز، صدای آقای ایواتاک عضو بهداری ارتش کجا است؟ آقای ایواتاک عضو بهداری ارتش کجا است به گوشم رسید. صدای جیغمانند زنی را که پی در پی میگفت آقای ایواتاکه اینجا نیستند آقای ایواتاکه اینجا نیستند شنیدم فهمیدم صدای همسرم است میخواستم جواب بدهم اما لبهایم ورم کرده بود و کلامی از دهانم بیرون نمی آمد دست چپم را که درد کمتری داشت کمی بالا آوردم همسرم برای پیدا کردنم به محل آوار بیمارستان نیروی زمینی رفته بود. وقتی شنید به مدرسه عمومی حساکا منتقل شده ام به مدرسه عمومی حساکا رفت و چون باز شنید که به شبارا منتقل شده دنبالم تا اینجا آمد. با این همه صورتم به اندازه تغییر کرده بود که حتی همسرم هم نمی توانست مرا بشناسد.